فصل دوازده هم. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. اگر برای قطع کردن یک درخت شش ساعت وقت داشته باشم، چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبرم خواهم کرد. آبراهام لینکول بهترین چیزی که همواره می توانید به خودتان هدیه دهید، خردمندانه ترین سرمایه نیز هست. آن همچنین حیاتی ترین گام در انجام دادن هر وظیفه چالش برانگیز و نیز همان چیزی است که بدون آن همه استراتژیهای های موفقیت هرچقدر هم که هوشمندانه یا آزمایش شده باشند محکوم به شکست هستند. این هدیه مرموز چیزی نیست به جز پیشرفت شخصی شما، یعنی گذاری شما روی بهبود فردی و رشد شخصی خودتان. آبراهام لینکول می گفت اگر برای قطع کردن یک درخت شش ساعت وقت داشته باشم چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبرم خواهم کرد. یعنی برای انجام دادن کار واقعی بریدن درخت فقط دو ساعت زمان باقی می ماند. به عبارت دیگر او دو برابر زمانی را که برای انجام دادن کار در نظر می گیرد صرف کار روی ابزارش می کند. در وظیفهی به نام زندگی ابزار کار شما چیست؟ جواب این سوال بسیار ساده است، آن ابزار خود شما هستید، شما تبر هستید، هیچ کسی بهتر از آبراهام لینکول این موضوع را نمیدانست. کسی که در طول زندگیش تلاش بسیار زیادی کرد تا خودش را تا حد امکان به تیزترین، قوی ترین و درستترین تبر تبدیل کند می دانید بیشتر مردم چه کار می کنند؟ هنگامی که در مسیرشان درختی وجود دارد سریع تبر را بر می دارند و بدون توجه به کند یا تیز بودنش ضربه زدن را شروع می کنند. و اگر خیلی زود شکاف بزرگی در تنه درخت ایجاد نکنند دست از کار می کشند و احتمالا زیر لب می گویند که ایراد از درخت است. اینکه با چه شدتی، در چه زاویه ای، با چه سرعتی و دقیقاً در چه نقطه ای بر تنه ای درخت ضربه وارد کنید، تاکتیک و تکنیک هستند که می توانند اندازگیری، سنجش و اصلاح شوند. اما همه اینها از خود تبر آغاز می شود و آن تبر شما هستید. یادگیری مداوم پیش از این درباره قدرت زمان صحبت کردیم و گفتیم که چقدر حیاتی است که یاد بگیرید در جستجوی اهدافتان قدرت زمان را مهار کنید. این کار قطعا بهترین استراتژی برای دستیابی به اهداف است. گرچه ممکن است زمان همه دردها و زخمها را التیام نبخشد، دیر یا زود موجب همه تغییرات خواهد بود. اما از منظر زندگی کردن با برتری خفیف و تسلط یافتن بر آن مهمترین نیرویی که می توانید از آن برای شتاب بخشیدن و تقویت مسیر زندگیتان استفاده کنید قدرت یادگیری مداوم است منظورم از یادگیری صرفا یادگیری از مدرسه نیست البته مدرسه رفتن جایگاه خاص خودش را دارد همچنین منظورم فقط یادگیری از کتاب ها یا معلم ها نیست گرچه به دانشی که از کتاب خوب به دست میآید احترام میگذارم و چنین احساسی را به معلم بزرگ نیز دارم. همچنین من فقط درباره یادگیری از طریق الگوبرداری از دیگران نسایه دوستان و اشتباهات و تجربیات خودتان صحبت نمیکنم. وقتی که از یادگیری حرف میزنم منظورم یک مورد خاص نیست بلکه همه ی انواع یادگیری است. هنگامی که فلسفه برتری خفیف را درک کنید و پا در مسیر تسلط یافتن در آن بگذارید، تعلیم و آموزش خودتان با هر نوع ابزار موجود و ممکن فرایندی حیاتی است که شما را در مسیر درست نگه می‌دارد و موجب می شود که برتری خفیف به نفع شما عمل کند. منظورم از تعلیم و آموزش خودتان یادگیری مهارتها یا موضوعات ویژه نیست، بدیهی است که شما برای کسب دانش و اطلاعات لازم برای مهارت یافتن در هر موضوع یا هدفی که به رشد و پیشرفت شخصی و شغلی شما کمک میکند به یادگیری مداوم نیاز دارید اما این بسیار ساده تر از کسب دانشی خاص است یادگیری مداوم و مادام العمر چیزی است که شما با کمک آن فلسفه و درکتان از نحوه اجرای آن فلسفه را به طور پیوسته بنا میکنید این موضوع در تسلط یافتن بر برتری خفیف نیز حیاتی است. این است که ممکن است از شنیدن آن بسیار متعجب و شگفت زده شوید. از میان فارغ و تحصیلان دبیرستان که ادامه تحصیل نمی دهند، حدود 58 درصد یعنی بیش از نیمی از آنها دیگر هرگز کتابی مطالعه نمی کنند. منظورم در باقی زندگیشان است. هنگامی که این رقم را خواندم شوکه شدم، اما این موضوع خیلی هم عجیب نیست. این موضوع یکی از همان دلایلی است که آن 95 درصد دست از تلاش کردن بر می دارند، به پایین منهنی شکست سر می خورند و در خام غرق می شوند. آنها زندگیشان را صرف ساختن رؤیای شخص دیگری می کنند. البته نه به این دلیل که نمی توانند خودشان را بسازند، بلکه به این دلیل که هرگز دانش مورد نیازشان را به دست نیاورده امروز مشکل بیسوادی بسیار بزرگتر از چیزی است که مردم گمان می‌کنند. بر طبق گزارش سازمان ملل، از میان بیش از 7 میلیارد انسانی که روی کره زمین زندگی می‌کنند، بیش از یک میلیارد نفر قادر به خاندن نیستند. باورتان می‌شود؟ یک نفر از هر هفت نفر، یک میلیارد نفر؟ اما توجه کنید اگر شما یکی از آن پنجا و هشت درصدی هستید که بعد از پایان دبیرستان هرگز کتابی نمیخوانند پس بین شما و آن یک میلیارد نفری که حتی اگر آن کتاب را بردارند نمی توانند آن را بخوانند چه تفاوتی وجود دارد؟ البته موضوع فقط مطالعه کردن نیست. چیزی که مطالعه میکنید کنید نیز حائز اهمیت است. از میان آن شش نفری که می توانند کتاب بخوانند، بسیاری برای سرگرمی و وقت گذرانی کتاب می خانند. البته من مخالف سرگرمی نیستم اصلا چه کسی است که از سرگرمی ها لذت نبرد حرف من این است که این داستانهای جنایی هالیوودی و رمان‌های عاشقانه شما را در نیمه بالایی منهنی برتری خفیف قرار نمی دهند مارک تواین می گفت مشکل دنیا این نیست که مردم کم می دانند. مشکل این است که آنها چیزهای زیادی را می‌دانند که اهمیتی ندارند. البته آقای تواین ممکن بود این موضوع را به ارزیابی وضعیت سواد در دنیای رسانه محور امروزی نسبت دهد و چونین بگوید. مشکل این نیست که مردم بسیار کم مطالعه می کنند، بلکه مشکل این است که آنها مغزشان را با مطالبی پر می‌کنند که هیچ نفعی به حالشان ندارد. اما چه می شود اگر به کتابخانه تان کتاب, کتاب هایی از جان مکسول، جک کانفیلد، زیگ زیگلر یا جیمران اضافه کنید؟ یا کتاب هایی مانند مزیت شادمانی، هفت عادت مردمان موثر، بیاندیشید و ثروتمند شوید و هر یک از صدها و هزاران کتاب الهام بخش، آموزشی و توانمندساز دیگر. آخرین باری که در یک سمینار آموزشی شرکت کردید کی بود؟ البته نه به این دلیل که مجبور بودید بلکه فقط به این دلیل که خودتان را بهتر کنید. آخرین باری که به بولینگ رفتید کی بود؟ اگر میانگین امتیازات بولینگ شما بیش از دویسته است تبریک میگویم شما بولینگ باز هرفهی هستید. اما شاید لازم باشد که در اولویتهایتان تجدید نظر کنید. اگر صد نفر از موفقترین زنان و مردان امریکا را به صف کنید و میانگین امتیازات بولینگ آنها را محاسبه کنید شرط میبندم که از هفتاد بالاتر نباشد یک امریکایی معمولی در طول زندگیش به طور متوسط 233 بار بولینگ بازی میکند در حالی که کارهای به مراتب مهمتر و بهتری برای انجام دادن دارد میدانم که بولینگ یکی از محبوبترین سرگرمی ها در ایالات متحده است اما آیا نمیخواهید که محبوب ترین سرگرمیتان کس کسب موفقیت باشد؟ من مخالف بولینگ یا سرگرمی های دیگر نیستم. ما در زندگیمان به تعادل نیاز داریم و بولینگ نیز می تواند به شیوه های مختلفی به شما کمک کند. از جمله تناسب اندام، روابط با دوستان، رها شدن از دقدقه های شغلی، تمدد اعصاب، خوشگذرانی و بسیاری چیزهای دیگر. با این حال سؤال من این است که آیا خودتان را بهتر می کنید؟ آیا رؤیاهای خودتان را می سازید یا فقط رؤیاهای های رئیستان را؟ اگر هر روز ده صفحه از یک کتاب خوب را بخوانید در مدت یک ماه یک کتاب 300 صفحه را تمام می کنید مثلا کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را انتخاب کنید. کتابی که نویسندهاش دانش شگفتانگیز کسب موفقیت را در لابلای صفحات یک کتاب جای داده است چرا نمیخواهید به مدت یک ماه زمان اندکی از هر روزتان را صرف مطالعه و یادگیری از کتابی کنید که شخصی مانند ناپل اونهیل یک عمر را صرف تحقیق و نوشتن مطالب آن کرده است؟ روی خودتان سرمایه گذاری کنید، تبرتان را تیز کنید، هر روز فقط یک فصل از یک کتاب الهام بخش و غنی از اطلاعات مفید را مطالعه کنید. هر روز پانزده دقیقه به فایل‌های صوتی متحول کننده زندگی گوش دهید. هر چند هفته یا چند ماه یک بار در یک سمینار یا دوره آموزشی شرکت کنید. آیا انجام دادن این کارها آسان است؟ قطعا آسان است و اگر این اقدامات منظم ساده در طول زمان مرکب شوند شما را به اوج می رسانند. آیا انجام ندادن آنها آسان است؟ البته که اینطور است و اگر همین امروز و همین حالا این کارها را انجام ندهید آیا زندگیتان نابود می شود؟ البته که نه. اما این اشتباه ساده در تصمیم گیری اگر در طول زمان مرکب شود شما را به پایین منهنی شکست سوق می دهد و هر چیزی را که به آن امیدوار بودید و درباراش رؤیاپردازی پردازی کرده بودید از بین میبرد. یادگیری کتابی در برابر یادگیری میدانی پنج قورباغه بر روی یک زنبق آبی نشستند یکی از آنها تصمیم به پریدن می گیرد. چند قورباغه باقی میمانند؟ مانند؟ اگر جوابتان چهار باشد مهارتهای ریاضی شما نسبتا خوب است اما متاسفانه این یک مسئله ریاضی نیست جواب درست پنج است بله، هر پنج قورباقه هنوز همانجا بر روی زنبق آبی نشستند، آن قورباقه فقط تصمیم به پریدن گرفته بود. در واقع آن قورباقه هنوز این کار را انجام نداده است. بسیاری از مردم زمان و تلاش زیادی را روی کسب دانش سرمایه گذاری می کنند، اما در پایان هنوز هم بر روی منهنی شکست زندگی می کنند. چرا زیرا تسلط یافتن بر برتری خفیف و قرار گرفتن بر روی منهنی موفقیت فقط به میزان یادگیری شما بستگی ندارد بلکه به کیفیت آن یادگیری نیز مرتبط است و به ویژه اینکه آیا آن یادگیری شامل انجام دادن کار عملی می شود یا نه دو نوع یادگیری وجود دارد یک یادگیری از طریق مطالعه که شامل خواندن کتابها، گوش دادن به فایل‌های صوتی و حضور در کلاس و سمینار هاست و دو یادگیری از طریق انجام دادن همانقدر که شما را به یادگیری از استادان بزرگ، کتابها، فایل‌های صوتی و کارگاه‌های آموزشی تشویق می‌کنم، به همان اندازه هم می‌دانم که همه آموزش‌های موجود در این دنیا به تنهایی کسب و کارتان را به موفقیت نمی‌رسانند، سلامتی و تندرستی را برایتان به ارمغان نمی‌آورند و شما را به شخصی شادتر تبدیل نمی‌کنند. همه اینها نیازمند این هستند که بلند شوید و آن کارها را انجام دهید. کتابی به تنهایی کافی نیست همه موفقیت های حقیقی از یک پیش مطالعاتی به همراه یادگیری میدانی به دست آمدهاند. زندگی تماشای ورزش نیست بلکه ورزشی است که شما را درگیر می کند و هیچ گونه جلسه تمرینی ندارد. شما از روز اول زندگیتان در این بازی بوده اید. زندگی درست همین جا و در همین لحظه جاری است. به همین دلیل است که امرسون که در مفهوم یادگیری کتابی فردی بسیار تحصیل کرده بود، توصیه کرد کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش می آید. توجه داشته باشید که این فلسفه برگشت پذیر نیست. شما نمی توانید ابتدا توانایی انجام دادن کاری را به دست آورید و سپس آن کار را انجام دهید. هرچند مردم قطعا تلاش می کنند تا کارشان را به این روش انجام دهند و کل زندگیشان را صرف جمعوری و کسب توانایی می کنند و در آخر کاری انجام نمی دهند. کارتان را آغاز کنید و توانایی انجام دادن آن به دنبالش میآید. تنها راه به دست آوردن توانایی انجام دادن کاری این است که آن کار را انجام دهید، فقط آن کار را انجام دهید و با انجام دادن یاد بگیرید. احتمالا این ضرب المثل معروف چینی را شنیده اید که می‌گوید سفر هزار مایلی با یک قدم کوچک آغاز می‌شود این یک مثال عالی دیگر از درک سنتی برتری خفیف است اما توجه داشته باشید که سفر با یک قدم کوچک آغاز می‌شود نه با فکر کردن به قدم برداشتن مردم اغلب می‌پرسند که راز موفقیت و فرمول جادویی من در کسب و کارم چیست آنها میپرسند کدام کار است که با انجام دادن آن موفقیتم تضمین می شود؟ جواب من همیشه یکسان است. از همین حالا به مدت یک سال به صورت فعالانه در آن فرایند قوطه باش. واقعا تنها جواب درست همین است، این یک جواب برتری خفیف است. شما نمی با چیزی که قصد انجامش را دارید یا برنامه ریزی می کنید که انجامش دهید رؤیایتان را محقق کنید. فقط با ساختن رؤیایتان است که آن را محقق می‌کنید. شما باید از روی زنبق آبی بپرید. زندگی انجام دادن است. اگر انجام ندهید، می‌میرید. آهنگ یادگیری. می‌توانم یک کتاب بسیار خوب مانند کتاب تو همانی که می‌اندیشی از جیمز آلن را مطالعه کنم و در کتاب خانه هم قرار دهم. سپس سال بعد برگردم و دوباره آن را بخوانم. و این احساس به من دست می دهد که گویی وقتی خواب بودم شخصی مخفیانه وارد اتاقم شده و مطالب کتاب را کاملا از نو نوشته است در حقیقت این اتفاق همیشه برای من رخ می دهد دائماً مطالب و نگرش هایی را از لابلای کتاب هایی که قبلاً یک یا چند بار خانده کشف می کنم یا به درک جدیدی از آنها می رسم چرا؟ به این دلیل که در آن اسنا چیزهایی را از طریق انجام دادن یاد گرفتم در واقع تجربیات جدیدم دیدگاه ها و چشمندازم را تغییر دادند حالا وقتی که یک متن یا نکته خاص را میخوانم در درک من از آن بگونه است که احتمالا سال قبل چون این درک و بینشی نداشتم و در نتیجه رفتارم تغییر می کند. سپس وقتی که مشغول فعالیت روز بعد می شوم چیزهایی را که از آلن یاد گرفتم به شیوهی به کار ببندم که حتی 24 ساعت قبل چنین تفکری نداشتم. کنفوسیوس می گوید دانش بدون عمل بی فایده است و عمل بدون دانش خطرناک. اینطور نیست که یادگیری میدانی بهتر از یادگیری کتابی باشد هر دو مهم محیاتی هستند همانطور که کنفسیوس اشاره کرد یکی بدون دیگری یا بیفایده است یا خطرناک و در هر صورت قطعا شما را روی منهنی موفقیت قرار نمی دهد یادگیری کتابی، یادگیری میدانی یادگیری از طریق مطالعه، یادگیری از طریق انجام دادن خواندن درباره آن، به کار بستن آن دیدن آن در عمل، انتقال آن تجربه عملی به مطالعاتتان، عمیق تر شدن درک و بینشتان، به کار بستن آن درک عمیق تر در فعالیتهایتان. این چرخه بیپایان است و هر جنبه یادگیری به تقویت جنبه های دیگر کمک می کند. شبیه بالا رفتن از نردبان است. پای راست، پای چپ. پای راست، پای چپ. آیا می توانید تصور کنید که فقط با پای راستتان از نردبان بالا بروید؟ وقتی که این دو کار را با هم و با یک آهنگ انجام دهید نه تنها موثرتر می شوند و یکدیگر را تقویت می کنند بلکه حقیقت این است که آنها اصلا نمی توانند به صورت جدا از هم مؤثر باشند حداقل نه برای مدت زمانی طولانی شما نمی توانید صرفاً بر اساس دانش فرا گرفته از طریق مطالعه موفق شوید و همچنین نمی توانید فقط از طریق دانش گردآوری شده از طریق انجام دادن به موفقیت برسید. این دو باید با هم باشند. ابتدا مطالعه می کنید و سپس انجام می دهید. انجام دادن چهارچوب مرجع شما را تغییر می دهد و شما در جایگاهی قرار میگیرید گیرید که می توانید بیشتر یاد بگیرید. سپس این یادگیری بیشتر درباره چیزی که با انجام دادن تجربه کرده اید بینش بیشتری به شما می دهد. بنابراین با بینش بیشتری آن فعالیت را انجام می دهید و این چرخه همینطور ادامه پیدا می کند. این آهنگ رفت و برگشتی بسیار مهم و ارزشمند است چرا که فقط آهنگ منظم یادگیری نیست. این آهنگ موفقیت است این همان چیزی است که شما لحظه ای که اولین گام کودکانتان را برداشتید تسلط یافتند و مهارت در آن را آغاز کردید. در حقیقت این همان چیزی است که شما حتی قبل از اینکه به مرحله راه رفتن روی دوپا برسید یاد گرفتید. روانشناسان دریافتند که سنه خیز رفتن یکی از مهمترین فعالیت هایی است که ما در زندگیمان انجام میدهیم. زیرا بر سیمکشی عصبی مغز و ظرفیت یادگیری آن عمیقاً اثر می‌گذارد. تناوب آهنگ دست راست، پای چپ، دست چپ، پای راست همانند اثر موجها بر خط ساحلی دریا بر سیستم عصبی ما اثر می‌گذارد، آن را توسعه می‌دهد، به آن شکل می‌دهد و آن را برای سطوح پیچیده‌تر آگاهی و یادگیری آماده می‌کند. احتمالا این عبارت را شنیده‌اید که قبل از اینکه بتوانید راه بروید باید سینهخیز بروید در این باره یک حقیقت بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد این آهنگ متناوب و ظرفیت شما برای هماهنگ کردن رفتارهای متضاد نوعی مهارت برتری خفیف مهم است ایجاد توازن و تعادل میان یادگیری کتابی و یادگیری میدانی یکی از های آن است و جنبه دیگر اصلاح مسیر است استراتژی موفقیتی که در ادامان را بررسی می‌کنیم. اصلاح مسیر. ترین مسیر بین دو نقطه یک خط مستقیم است. درست است؟ نه، اینطور نیست. این موضوع ممکن است در تئوری درست باشد، اما در واقعیت هرگز این گونه نیست. در جهان واقعی همه چیز خمیده است. جهان واقعی همین جایی است که من و شما در آن زندگی می کنیم و در آن موفق میشویم یا شکست میخوریم. به نحوه رانندگی تان در جاده ای که کاملا صاف و مستقیم به نظر می رسد فکر کنید. البته که آن جاده به هیچ وجه واقعا صاف و مستقیم نیست بلکه پر از دستاندازها چالهها، ها، و تغییراتی در ارتفاع و شیب است. از کجا این موضوع را می دانیم؟ به نحوه رانندگیتان فکر کنید وقتی در یکی از ازاد راه ایالتی که به شکل بیاتهای مستقیم به نظر می رسد رانندگی می کنید، آیا فرمان اتومبیل تان را کاملا صاف و بی حرکت نگه می دارید؟ نه. شما مدام فرمان اتومبیل را به چپ و راست میچرخانید و به طور جزئی مسیر حرکتتان را اصلاح می کنید. آن حرکت و تنظیم مداوم فرمان اتومبیل آنقدر برایتان طبیعی و است که احتمالا هرگز به آن فکر نمی کنید. اما اگر تصمیم بگیرید که فرمان اتومبیلتان را محکم و ثابت نگه دارید در کمتر از یک دقیقه از جاده خارج می شوید. زندگی دقیقا شبیه همین موضوع است این شیوه اصلاح مداوم مسیر فقط در رانندگی در جاده های آسفالتی صدق نمی کند بلکه در پیچیده ترین سفرهای بشر تا کنون نیز اتفاق افتاده است معجزه مهندسی مدرن یعنی فضاپیمای آپولو در مسیرش برای فرود ایمن بر روی سطح ماه فقط دو تا سه درصد از زمان سفرش را روی مسیر درست بود. به این معنی که حداقل در نوید هفت درصد از زمان سفرش از زمین تا ماه خارج از مسیر درست حرکت می کرد. در این سفر تقریبا چهارصد هزار کلومتری آپولو در واقع فقط دوازده هزار کیلومتر را در مسیر درست حرکت کرد. به عبارت دیگر، در هر نیم ساعت پرواز کمتر از یک دقیقه را در مسیر درست ترکت کرد. آپولو به سلامت به ماه رسید و به زمین برگشت تا داستان سفرش را برای ما تعریف کند. چطور چنین چیزی میسر شد؟ مسافرت فضایی مدر نمونه ای استادانه از اصلاح مسیر به شیوه برتری خفیف در عمل است. اگر فضاپیمای آپولو که در زمان خودش یکی از پیچیده ترین، گران ترین و دقیق ترین تکنولوژی های روز را داشت، 29 دقیقه از هر 30 دقیقه را صرف اصلاح خطاهای مربوط به منحرف شدن از مسیر درست می کرد، آیا منطقی است که شما انتظار داشته باشید، بتوانید بهتر از آن عمل کنید؟ فرض کنید که می توانستید همان دقت فضاپیمای آپولو را در پیگیری و دستیابی به اهدافتان داشته باشید؟ این موضوع به این معنی است که در هر سال بیش از ده روز در راستای هدف و در مسیر درست نخواهید بود. دفعه بعدی که به دلیل خارج شدن از مسیر درست به خودتان سخت گرفتید، به برنامه آپولو فکر کنید و به خودتان کمی فرصت دهید. افرادی که درکی از برتری خفیف ندارند گمان می‌کنند که هر طور شده باید از منحرف شدن از مسیر جلوگیری کنند زیرا گمان می‌کنند اگر از مسیر درست خارج شوند شکست می‌خورند اما افرادی که برتری خفیف را درک کرده اند، فلسفه توماس واتسون درباره شکست را با جان و دل می‌پذیرند نسخه کامل بیانیه واتسون به این صورت است دوست دارید فرمول موفقیت را به شما بگویم در حقیقت فرمول موفقیت بسیار ساده است نرخ شکست هایتان را دو برابر کنید شما گمان می‌کنید که شکست دشمن موفقیت است اما به هیچ وجه اینطور نیست می‌توانید با شکست خوردن ناامید و دل سرد شوید یا اینکه چیزی را از آن یاد بگیرید بنابراین پیش بروید و اشتباه کنید هر چه می‌توانید اشتباه کنید به یاد داشته باشید که موفقیت در آن سوی شکست اتفاق می‌افتد یادتان باشد که آرمسترانگ و آلدرین بر روی ماه قدم زدند و تنها دلیلش این بود که آپولو به ماه رسید. شما هم می توانید. چطور؟ با اصلاح مداوم مسیر.